اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و السلام و السلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من و الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله تعالى و برکاته اگر دوستان لطفو کنند بیان بنشینن هم خودتون راحتید ما راحت میشه از همین راه باریک بیان جلو بنشینن ساکرون الله خیر عبدالباید زیره هم قبل از هر چیز خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر می کنیم چون صاحب نعمت هست صاحب فضل هست صاحب مننّت هست هر چی بگیم کم گفتیم همه کار خودشه همه چیز خودشه منشأ هر خیر و برکتی است منشأ هر نور و درخشندگی است منشأ هر بیداری و هدایتی است منشأ هر فکر و اندیشه‌ای است منشأ هر مهر و محبت و صفا و سمیمیت است. و ما بکن من نعمت فمن الله هرچی نعمت در شما هست از جانب الله است. و انت عد نعمت الله لا تحسوها منشأ تنوع در نعمتم الله است. پس شکر مال الله هست لعی شکرتم لعزیدن نکن شکر نعمت نعمتت افزون کند اگر طالب فیضی اگر طالب رشدی اگر طالب خیری اگر طالب سعادتید اگر طالب علمید اگر طالب تجارتید اگر طالب دنیایید اگر طالب آخرتید اگر طالب ماده هستید اگر طالب معنا هستید همش اللهه خالق همه اللهه ملک ملک الله ما هم خلق اللهیم نعمتم نعمت الله زمانم ملک الله در اختیار ما و شما گذاشته تا زمان را به کار بگیریم و همراه به کار گرفتن زمان فکر و چهار اندیشی بکنیم و از امکانات بلقوهی که در اختیار ماست برای رشد و توانمندی خود و هم خود و همه مخلوقات قدم خیری برداریم تلاشی و کنیم پروردگارا تو خالق همه خوبی ها هستید بیاد کل خیر پروردگارا تو خالق یا خدای مهربانی ها هستید و خالق همه مهربانی ها و مهربان ها الرحمن پروردگارا تو خالق همه زیبایی ها هستید منشه همه زیبایی و هنرنمایی ها فقط تویید این الله جمیلون خدایا تو زیبا آفرین و زیبا پسند و زیبا یان را دوست میدارید یحب الجمال ان الله جمیلون خداوند زیباست و زیبا پسندان را، و زیبایی را دوست می‌دارد یحب الجمال از زشتیها بدش می‌آید از زشت پسندان بدش می‌آید هر وصف خوبی هست تو را سازد الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پروردگار را چی می‌شود که ما را توفیق بدهید تا تو ایاک نعبد و ایا که بکنید و ایاک ایا نستعین بکنیم و هر کسی که ایاک نعبد و و ایاک نستعین درش تحقق پیدا کرد اهدنا الصراط المستقیم می شود اگر نعبدو و نستعین را تحقق بخشیدید و قبل از اینکه نعبدو و نستعین را تحقق ببخشید اعتقاد و باور و اعتراف داشتید که الحمدلله رب العالمین هست و خداوند مالک یوم الدین هست قطعا صراط مستقیم نصیب تو می شود اهدن سراط المستقیم وقتی سراط مستقیم نصیب نصیب شد قطعا سراط منحرف و سراط مغضوب عليهم از تو دور می شود چون تو صراط مستقیم نصیبت شده کسی که بیدار شد از غفلت بدش میآید کسی که آگاه شد از جهل بدش میآید کسی که درخشید از تاریکی بدش میآید کسی که پاک شد از پلیدی بدش میآید کسی که خوب شد از بدی بدش میآید کسی که لذت هنرهای زیبا را برد و چشمش و دیده و دلش شیفته هنرنمایی های زیبای خداوند شد از هنرنمایی زشت سیرتانی چون ابلیس بدش می‌آید هرچند که به هنرهای نازیبای خودشون جلوه های زیبایی بدهند اگر این مراقب را طی کنیم چیزی نمانده است که فقط بگوییم آمین ول بالین جوابش آمین هست اگر آمین را گفتید و قبل از آمین با خلوص نیت خواندید به درگاه اون کسی که باید بخانید فذكرونی مرا بخوانید نتیجه آمین استجابت هست آمین لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک این الحمد و النعمت لک والمولک لا شریک لک قل هو الله احد الله السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفرا احد قرآن با ما سخن میگوید یعنی الله با ما سخن میگوید تو باید قبول بکنید که عبدید اگر قبول کردی که عبدید قطعا قبول کردی که الله رب است زمانی تو قبول نداری که الله رب باشد که تو عبد باشید اگر تو عبد نشدید الله از ربوبیت خودش نسبت به خودت خارج کردی گرچه الله رب است تو بخواهی یا نخواهی اما رب تو دیگه نیست چون تو نخواستی الله رب تو باشد تو ابلیس را قبول کردی که رب تو باشد به جای رب العالمین الله پروردگار را کمبود نعمت نداریم از همه طرف سرازیر است. ابر و باد و مه و قرشید و فلک در کارم تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری همه از بحر تو سرگشته و فرمون بردار مشکل این قسمت آخره شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. امشب چه مجلس خوبیه جمع شوید بیایید دوباره خاطرات ایمانی گذشته را زنده کنیم با هم. چون شیاطین بیدارن و دشمنان بیدارن حیف از که دوستان غافل باشند و بخوابند. شب شبخیز که آشقان به شب راز کنن گرده در بام دوست پرواز کنن هر جا که دری بود به شب در بندن الا در دوست را که شب باز کنن گر در یمنی چو بامنی پیش منی ور پیش منی چو بیمنی در یمنی من با تو چینی نمی نگار یمنی خود در عجبم که من تو ام یا تو منی انسان وقتی به خاطر خدا همدیگر را دوست می‌دارد تعجب می‌کند احساس می‌کند که از سمیمش از اعماق و ژرفای قلبش و وجودش که برادرش همکیشش هم نوعش خودشه و اون اونه انما المؤمنون اخوه رب اخ لك لم تلده امك خیلی وقتا برادران و خواهرایی برای تو پیدا میشوند که از مادرت زاییده نشدهاند، از مادرت به دنیا نیامدهاند جز برادران و خواهران ایمانی کسان دیگر توانند بشوند بعضی موقع انسان از برادر تنیش احساس بیزاری و نفرت میکند فکر میکند که با اون بیگانه است بعضی موقع آدم یک غریبی به ظاهر غریب تنها مسافر یک نظر میبیندش در خانه خدا احساس میکند که مرتبط به وجودش حیف نیست چنین مجالسی را با مجالیسی که مملو از رزائل هست مملو از آلودگی ها سمعی بصری نظری حسی چنین مجالیسی مملو از معنقیات که برای ما رایگان مهیا می کنند عوض بکنیم با مجالیسی که باید شر و مسئیت و رزیلت و نجاست و آلودگی و بی را با پول بخریم. من به شما تبریک میگم در انتخابتون موفق بودید در روایات وارد شده که وای بربندی که خداوند دوست دارد در اون مجلس او را پیدا کند و ببیند وقتی به اون مجالس نظر می کند الله در اون مجلس بنده خدا گم بشود خیبش بزند و وای بر حال بندگانی که خداوند دوست ندارد در مجالسی پیدا بشود خداوند در اون مجالس اون بنده را ببیند و توسط فرشتگان ثبت بشود حضورش در اون مجالس خداوند بر مجالس ذکر نگاه میکند مطلع میشود دوست دارد بندگانش را ببیند در چنین مجالسی غیبت نخورید هوا سرد نیست امکانات فراهمه ماشین و موتورسیکلت فراوان مالکیت ماشین ندارید کرایه ماشین دارید سر جاده؟ قش آدرس کجا سراخی دادن که یک جایی عروسی سالم هست برادرمون عبدالواحد گفت نمیگیم اسلامی خیلی ها از اسلام نمیدونم چه حراسی دارن یا چه طوری شده که مردم از اسلام حراس پیدا بکنن چه شده که خداون را یک هیولا و دایناسور تصور میکنند جوانای ما. نکنه تقصیر ملهاست شاید اگه خدا را بد جلوه دادند همیشه از شطور کور و مار و مور و اقرب و زبانهای آتش صحبت کردن. از رحمت خدا و زیبایی خلقت خدا و هنرهای زیبای خدا، و رحمانیت خدا و رحیمیت خدا و تفکر پیشرفتی خداوند و علم مبارک خداوند و صفات کریمه و عظیمه خداوند برای اونها صحبت نکردند. بچه یک ساله دو ساله خواب نمیره به بچهش بگه بخواب وگرنه سگه کورو میارن به خواب و کرنش شطر هست شطره نمیدونم فلان گرد هیولا زمان قدیم یه چیزی بود همطور شایه بود به اسم بیبری میگفتن بچه ها میدزدن قلاب میکنن خون جگرشون رو جمع آوری میکنن و میدن به همین بیبری بچه ها را میترسندن ما بچه بودیم ما را میترسندن ساکت باش و بیبری میبردت چرا نمیذاری جوانای ما با دوست باشن؟ الله ببوین از خلال نعمتهاش گل خوشبو هم بویدنیست هم دیدنیست یعنی الله سبحانه و تعالی به اندازه یک گل محمدی که پرپر پر میشه و مردم سر و کله شنو میشکنن که این گل ببینن و ببوین اینه الله به اندازه یه گلی که پرپر میشه ارزش نداره که به بچه هامون معرفی بکنیم الله گله گل خوشبو و خوشرنگه چرا اینطوری بندگان خدا از خدا بحثت دارن در صورتی که باید در آهوش خدا برن و دوست داشتنی هست و دوست بدارن خدای ما خدای خوبی هاست خدای آتفه های زیباست خدای زیبایی هاست خدایی که با بندگانش در اولین ارتباط میگوید اقرع بخان اقرع بخان از علم است که انسان رشد می کند. از علم است که بیداری حاصل می شود. از علم است که تشخیص و تمیز حاصل می شود. از علم است که توانمندی ایجاد می شود از علم است که مسئولیت ایجاد می شود اللهی که ارتباط بابندگانش بر مبنای علم است نون و وما و صحبت از قلم می کنه همه دوستان بچه هاشون مدرسه بفرستن که قلم دست بگیره و بسم الله بنویسد اما وقت عروسیش که میشه. شیشه های شراب رو پخش میکنه چرا بچه مدرسه فرستادی که قلم دست میگیره بسم الله بنویسه؟ علم بکنه که تو عروسیش خدرش بیاد زهمات بیس سالی که تو مدرسه و دانشگاه و مدارس علمه بچه شو فرستاد هزینه کرد تو یک شب عروسی با شراب و معصیت و موسیقی های و انسان های بیبن که تو عروسی دعوت میشن و شراب و تریاک به مردم میدن و میتنن و میرسن و از خدا بیگانه میشوند در یک شب بر میدهد و فرزند خودش که 20 سال 20 سال تلاش کرد عالم بشه در منتهای های و و عقلی و جهالت دفنش میکنند اینطوری بچه رو به خانه بخ میفرستن با دسته اوسکر او ارکست بی تقوی که همه چشمشون به ناموس مردم اول شراب میخورن بعد میان پشت ارگشون و چشمشون تو جمع نگاه به جوان و پسران نمی کنن که خوب میرستن فقط نگاه به دخترای جوانی که آستین کوتاه پوشیدن پوشیدند لباس تنگ و نازگ پوشیدند کاسیاتون آریاتون مائلاتون ممیلات رؤوسهنه که اصناوت البخت المائله هست چشم این خواننده ها فقط به اونجا میچرخه و خودتون میدونی که به کجا میچرخه کجای این ها رو میخواد ببینه تا گلوش باز بشه و بتونه بخونه همین دیشبم هم هم در قش زلزله آمده بعد از زلزله قشمی که منطقه را لرزانده و قدرت این زلزله تا دوبه هم رفت و بعد از اون نزدیک شاید 500 تا پس زلزله آمده زلزله 100 سال پیش قشم شش ماه پس زلزله داشته شما یاد نمیدید از اونایی که هفتاد هشتاد سالشونه بپرسید که از پدرانشون نقل بکنن 100 سال پیش که قشمو نابود کرده و تا شیش ماه میگویند پس زلزله داشته همین دیشبم در همین کشم زلزله آمده خیلی ها غافلن چار هزار خانواده تو خیمه نشستن چار ماهه بازم ما پول داریم که شراب بخوریم چطور از دلمان در میاد که عروسی های غیر اسلامی برگزار بکنیم عروسی های غیر سالم برگزار بکنیم کشیدنی میخوای بفرما نوشیدنی میخوای بفرما کلت و گر کن بعد دور برست با ناموس مردان خیلی هم تماشا میکنن کف میزنن. دخترتون خیلی خوب می رقصید وله این از ماهواره گرفته. این رقص جدیده این رقص ترکیه ترکیش چیزی هم میگه که حالا بگن هم بلده. این مدل لباسش و بله این هم از شهرستان آمده چون ما با هم کار میکنیم رخت آمد داریم. اونا میام پیش ما ما اونجا بالاخره کمال هم نشین. از که باید تشکر بکنیم تا خوبیی که به ما داده نعمتی که به ما داده برای ما حفظ بکنه وگرنه اگر نه امروز نعمت در کفت کافیه که این دست تو الان اینطوری نگه بداریم میمونه توش نعمت اینطوری بکنیم میریزه لیوانی که آب زلال توشه وارونه نکن اینطوری نگاهش بدار اگر راست میگیم خودمون رو بتکنیم. ولی گناه تکونی بکنیم نه ایمان تکنی. بعدی سر عرسی می خودشون رو می تکنن. هرچهی ایمان تو بدنشونه تو لاششونه؟ می تکنن. به میرن مکه خودشون رو میتکنن جلال و کعبه که برای اولین بار بعد از 50 سال بدنش میلحظه یا باید از ایمان خوبیها خوبی ها خودتو بتکنی یا باید از بدی و گناه خودتو بتکنی هر کدوم انتخاب میکنی از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم به روید جوز جو هرچی کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی خداوند به انسان عقل دادی کاری بهش نداره میگی این تو و این چراغت، دکمه رو بذار روشن میشه تو چاله نمی افتی. ولی چرا خاموش بکنی یا چرا روشن بکنی چشمتو ببندید بازم همونه امشب شب خوبیه نمیگم می هوا خوبه منظورم هوا خوبه نیست همین شبهای خداوند خوبه هر شب شب قدر است اگر قدر بدانید همه روزهای خداوند خوبه هر روز من و تو میتونه اید باشه همه انسان های و بندگان خدا خوبن اگر قدر خودشون و نعمت های خدا را بدونن اگر نخواستی خوب بشی بد میشه همین بس ولی اگر درمان نمیتونه باشی درد نباش اگر مرحم نمیتونه باشی زخم نباش حدیث دارین که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند من کان یؤمنو بالله و اليوم الاخر فلیق خیرا او اسموت کسی که ایمان به روز قیامت به خدا و روز آخرت دارد خیر بگوید اگر خیر ندارد سکوت بکند این زبان را به شر نک یک کلمه کوچه که پرمحتوی با نیت نیت خیر شاید جامعه را متحول بکند و یک کلمه بد شاید پایه‌های ایمان را در سینه بلرزاند بهتر است که پایه‌های خیر را در جامعه تثبیت بکنیم با حرف خیری که میزنیم با قدم خیری که برمیداریم با نیت خیری که میکنیم با دعای خیری که میکنیم با کمک خیری که میکنیم با علم خوبی که یاد میدیم با پول خوبی که میدیم مدرسه درست بشه مسجد درست بشه کتاب خونه راه اندازی بشه جوان فقیر به دانشگاه بره یتیم احساس بی کسی نکنه با پول دیگه جوان ضعیف داماد بشه چرا غافلین برای بیداری ما زلزله شیش رشتری کافی نبود سونامی میخوام؟ ف امواژ میدونید چقدر بوده و سرعت امواژ سونامی ارتفاج بین سی تا چنت و سرعت آب و امواژ که انسان‌ها رو تعقیب می انسان‌های انسان خلافکار رو بین ۶ تا ۸ کیلومتر در ساعت چطوری می‌خوای خواهی بدوی؟ 700 کیلومتر در ساعت سرعت داره تو رو میکنه چقدر که بوی سالون داشتیم البته اینجا میشد نشون بدید نیتونستیم در کنار یک آمپریفایر یک کامپیوتر بیاریم یا پرژیکتور اینجا یه پارچه سفید این فیلم سونامی که چطوری آب از همه طرف میاد و انسان ها پنگ هزار نفر یکجا جا دارن میرن که ایچی میکنه این طوری. قدرت خدا ازا زلزله الارد و زلزله ها تو قشن زلزله میشه تو دوبه میلرزه از همین آب عبور کرده میگفتن که دوبه زلزله نمیاد قشن زلزله میشه اونجا میلرزه قبلش هم زلزله بم بعدش زلزله قش. بعد از زلزله آجاباد بعد از زلزله بخش فیلم و بخش از رویدن و بعد از زلزله برادران در لرستان نزدیک 300 تا قیه امشب عروسی است. ولی یک عروسی غریبانه امشب جشن شادی است ولی شبیه به ما میماند امشب جشن رقص و پاکوبی است ولی همه ی حضار که انهو بی حرکتان. طوری شده که احساس می کنیم عروسی سالم یعنی ماتم یعنی غریب غربت یعنی بیرو بی نشاد بی حرکت چه احساس بدی به من دست داده چرا این داری شدیم وقتی شراب بیاد ناموس من بیاد برخش به جلال و مرد نامهرم احساس خوبیمون دست میده احساس میکنیم کلاس من داره بالا میره تو مردم وجاحتی پیدا میکنین این نشانه کلاسه <تصفيق> چرا وقتی چادر از سر زنمون میفته احساس خوبی به من دست میده وقتی چادرش کلوفتر میشه چادر ناموس من دختر آمون کلوفتر میشه لباسشون بلندتر میشه کاملتر میشه احساس بدی بده اون دست میده به زن ما میگیم دنبال ما نیا خجالت میکشیم چه دنبالته گونی پوشیده همسرمه ما چه دورانی داریست زن از چه دورانی گرفتید محصیت خدا چقدر احساس انسان رو میکنه نیت انسان عوض می کنه انسان عوض می کنه فکر انسان رو عوض می کنه روح انسان رو عوض می کنه انسانو یک پارچه پلید می کنه یک پارچه تاریک می کنه یک پارچه بی احساس می کنه همشو وارونه می بینه خسلت خدا همینه. خسلت ابلیس همینه وقتی به تو تزریخ میکنه آمپول وارونت میکنه آمپولی که دست ابلیس وقتی تزریق میکنه وارونت میکنه فکرت، نیتت، قلبت، قالبت همه رو وارونی میکنه تا تو را به دام ایدز نیندازد تا تو را به دام اعتیاد نیندازد تا تو را بنگ و هشیش تقدیم نکند که همه چیز را وارونه ببینید ولد نمی کند به دام انداخته چکرم زاکم الله خیلی شما پول گرفتید تو اینجا و من گفتن شما پنجه هزارتان پول گرفتید این بچه که سرود خوندن دارن گفتن 50 هزارت من اول بیانه گرفتن این بچه هایی که چک گرفتی یا نگرفتی؟ آخر سرودتون چه بود بگو بگو بگو تو بشنرن بلند شو بیا پیشنرن جمع ترخونش بیاد تو که سردستین ها پنجاز دارت و باید نگرفتید چه خوندی میده آخر سرودت در میگه درباره خدا خوندم قردش نگاه کنید آدم با خجالت بکشه وقتی روشی سفید میشه میره سر عروسیش مشروب میاره پخش میکنه چند سالته؟ سیزده سال, سیزده سال. به من پیرمند پیر ریستفید میگه که درباره خدا خوندم چی خوندی درباره خدا؟ من خوب بشه میدادم. من دارم میلحظم تو که نود بلحظی من سرطفا گناهم تو که انویز بالغ نشدی سیزده ساله چی ترسیم بگو هستن درباره خلدا خدا خوندده می همین ت خیلی بزرگ باری کردید درست بزرگی به ما دادید امشب توبه رو فراموش کرده بودی. نمی که یک بچی سیزده ساله این وگر بیشتر قدش نیست امشب به من پیرمرد میگه الهی یا الهی این بخون الهی یا الهی یا الهی الهی توبتن قبل المماتی شاید اینا که سرودم خوندن اکثراً بچه های فقیر باشن از نظر مالی ضعیف باشن ولی هیچ کدومشون نگفتن که ما ده نفریم نفر دو هزارت من و ما باییم تا سرود بخونیم ولی اون لوتی که میاد اون خواننده بی نماز و بی که میاد اینا نماز اشاشونم خوندن با حوزه هم آمدن از تو مسجد آمدن من قطعاً میگونم پرازدم برای که تو سخندانی کردی صد هزار تومن بیاانه میگیره 500 هزار تومن هم برای یک شب که بیاد کنسرت مسیت اجرا بکنه چ که دو میلیون تو هم سفید میگیره چک که اگر کسی تو عروسی شراب خورد آمد مس شد رگش شد، جازش رو نمیدونم گیتارش خورد کرد چک که داشته باشه. نامه هم داره از منکرات از مفاسد ما میخوایم عروسی برگزار کنم شادیه. چه باز بازم میگی این عروسی بده پول داری؟ زور داری نفوذ اجتماعی داری جیراخور داری پرور شاندام میری دنیا میدان برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا و خدا دوست داره تو قرآن گفته و پیغمبرشم صلی علیه وسلم گفته که برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا با هم مسابقه بدید پس تب کل خیرات سابق من اله مغفرت بکن تعبیر دیگه بکنم دنیا میدانیست. برای بنمایش نمایش کذاشتن شکر خدا شکر از خودت نشان بده پیامبر صلی اللہ علیه وسلم خداوند دوست داره هر نعمتی که تو استفاده کردی آثار اون نعمت در زندگی تو می بینه در حرکات تو بینه در سکنات تو بی بینه در نگاه تو بی بینه آثار نعمت میخواد بر تو ببینه. کجاست آثار نعمت؟ یک باز کردن این آثار نعمت عروسی مبتزل و بیتقویی که میشه باور بکنید من تو جامعه هستم فکر نکنیم با ملاه میگردم دو 24 ساعت تو چهار دیواری مدارس دینی و مساجد هستم طوری نیست من تو جامعه هستم عروسی غیر اسلامی و غیر سالم که میشه از ساعت یک بعد از ظهر دیگه 5 تا موتور و چهار تا موتور و ستا تا موتور و همه دو پشت و سه پشت. از ساعت که بعد از ظهر. بعضی پلاستیک دستشونه، بعضی قطی دستشونه. آماده کردن حالا سازگردونن، حالا صد یک بعد از دوره همه تو خونه ها هستن، پدر و مادرها، ولی بچاشون با موتور تو ها آدرس دارن کجا؟ از ساعت که ظهر حالا دنبال خریدن، دنبال جا میگردن. امشب فلان عروسی اورگه. جادبه. سازه ساعت دو شد ساعت سه جا پیدا میکنن ده نفر با هم میشینن میخورن دونگیر دیگه هر کسی چیز آورده یکی کوتی آورده یکی پلاستیک آورده یکی هم دیگه نمیدونم چه میگن رو. خودشون میگن چیزایی. چیزایی میترسم بگن دیگه بگن شیخم باشون که، از که دیگه <تص> <تصفيق> من باشه شریک نیستم ولی خب من میشناسم بچه های ما هستن. وقتی که حالشون دیگه عروسی تمام میشه بعضی هاشون که خیلی با هم سر میستیم درد دل میکنن وقتی که خوردن دیگه دنبال چی میگردن الان کی میدونه دیگه خوردن مکتبور. قابل. نشبول میدونه چیه نشبول کابل میبنده زیر پیرهنش یا دیمپو همه هم نفر یک مکت تو جیبشون از خونه که حرکت میکنه شراب خورده یا از تو اون کوچه هر کدوم یک مکت یه یک کابل دوره کمرشه با این نیت میره سر عروسی حالا تو میخوای عروسی برپا بکنی که از همون ساعتیه که بعد زورش شه، ولی عروسی های سالمه ساده طبق رضای خدا از اون رسال نخواه مثلا لاف بیاد دیگه توری بیریم که نماز اشار تو مسجد جامعه قشن بخونیم بعد از نماز صانت هاو بخونیم بریم مصبخه سر عروسی که متن نشیم این کجا اون کجا طوری بریم که نماز عشامان یا تو راه می‌خونین یا تو مسئله کش می‌کنین که بلا فاصله بعد از نماز بعد از نماز بریم تو یعنی با وضو میاد از اونجا حرکت میکنه بریم که اول زود برسیم اول سخنرانی دینی برسیم شرط نیست من سخنرانی بکنم نگاه کن چی گفت نگاه نکن کی گفت شیخ عابد میخواد صحبت بکنه شیخ انصاری میخواد صحبت بکنه شیخ کاملی می‌خواست صحبت بکنه ما نگاه بکنیم چی گفت؟ نگاه نکنیم کی گفت؟ ما عادت کردیم که نگاه بکنیم کی داری صحبت میکنه؟ هی جماعتی بلند بشید تو مسجد بگه بشیدید به خاضر الله بلکو ایچی بی ما تذکر داره میده الله تو بنگلادش هم ما دیدیم طرف اصلا نه عربی بلد بود نه فارسی بنگالی سلام علیکم گلیه میکرد. سلام علیکم یعنی اسلام علیکم بد دست می بلن که با تمام الله الله الله دعا دعا نه ترجمه میخواد الله سلام علیکم دعا نه ترجمه نمیخواد که در بندرباسی که از محلات بندرباس سال گذشته سر یک سراحی اونجا عروسی بوده همه محصودن یه نفر مرس بوده از بیرون میاد خندری دستش بوده میاد تو جمع مرس دیگه کسی اینطوری داره میکنه. کنه تا میرسه به یک جوانی اونجا تقویزدن گردنش همونجا تو عروسی می وقتی گرفتن شکم اعدامش تادر شد همه التماس می نه ببخشیدش گناه داره حالا رضایت دینید شما حالا اون که برمه میگرده حالا اشتباه کرده ما مزرد میخوایم اون زده ما مزرد میخوایم طرح راسته های کاذب واسطه های کاذب درسه که خداوند میگه و لکن فلقصاص حیاتون یا ولی الالبام اه اهل خرد اهل اخول در قصاص گرفتم برای شما حیات هست به من فراموش کردن مذلت میخوام از تما قرار شد اسم من دادن که تبریک بگم بدون چون آقای سرورمان جناب شیخ خطیبی تبریک گفتن خب جا داره تبریک بگیم به برادرمون در نور و عزیزمون که حقیقتا این مجالس رو برپا کردن که استواب گیر ما بیاد سلامی به شما بکنیم شما جواب سلام ما رو بدید ارتماع صدای خیر داشته باشیم برای ما دعا بکنید نه همش برکت برادر برادرمون وحید رحمانزاده اشون تبریک میگم و میگوارم که در کنار همسر و همفکر و همراهش و رفیق دنیا و آخرتش انشالله مادر فرزندانه آلم و دانشمندش و مفیدش در تمامی مراحل زندگی ضعف باشه و براشون حسن خاتمه حاصل بشه بگید آمین و همچنین تبریک میگم به برادرمون ولید محمد نژاد همین دعاهایی که برای برادرمون و نوره چشممون وحید کردیم برای این عزیزمون و نوره چشممون همون دعاها رو میکنیم خداوند در طول زندگیشون و مراحل زندگیشون سلامت و سعادت و هدایت کامل و خاتمه بخیری نصیبشون بکنه بگید آمین همچنین برای برادر عزیزمون و سرورمون و نور بنیامین حسابی برای ایشون هم دعا می‌کنیم که خداوند ایشون هم را مثل اون دو برادر عزیزمون و آرزوهای خوبشون برسانن اگه آرزوی خوب نداشتن این مراسم برگزار نمیکردن اگر نیت شر داشتن چه دیگه برگزار میکردن میگفتن ما عروسی میخوام که خدا توش نباشه علیاذ بالله ما با ها کار داریم تا اونجایی که میگن بسم الله و سفجک علا فلان فلان تمام شد به مهر فلان فلان تا اونجا با ملله کار داریم که صیغه عقد ما جاری بکنن تا اونجا با بسم الله کار داریم اما تو جشن عروسی مون دیگه نه کار با مullah داریم نه کار با بسم الله داریم نه کار با خدای و داریم اینجا دیگه دیگه بحث جداگانه است ایچون هم در تمام مراحل زندگی در کنار همسر عمرش به سلامت و سعادت کامل برسن و در همه امورات و شونات زندگیشون خاتمه به خیر بشن بگید آمین شما حضار محترم برادر و خواهر بزرگ و کوچه کخیر و تاجر این جمع مبارک و کسانی که در اطراف صدای ما رو میشنن خطن خواهرات تو این ساختمان بابرکت هستن اینجا مهد قرآن و اینجا مهد قرآنه نزدیک این و تا بچه های شما اینجا نقاشی های قرآنی میکشن بچه های خطاطی خطاتی قرآنی ترراحی قرآنی صوت و لحن قرآن ترجمه قرآن داستان های قرآنی سرود و اناشید قرآنی تواشه قرآنی تو همین ساختمان نمیدونم گذرتون افتاده که بیرید داخل یا نه اینام نه؟ اینام نمونه بالاخره یه خبره هست که اینا آمدن پس از این در از این در داخل شدن این رو یاد گرفتن از این در خانه شدن دارن عملی میکنن چقدر پدرشون خوشحاله الان باقی رو میگن پسر من رو بلند کرد از این سآل کرد چقدر خوشحاله بعضی از عروسی های اسلامی پدر نشسته یه وقتی یه پسر میاد دارو خونه چور میزنه. یا مست در خونه میاد تا چشمی بید پدر به سرش سرش میاندازه پایین خدا نکنه که بیاد داخل آبروم رفت خدا نکنه بیاد داخل اینجا پدر میشه اگه پسر منم بلند میکنه خیلی خوبه خدا برای همه هست این برای همه هست ترجم نداره تکلف هم نداره همه هم یک نواختن خداوند به همین شما حضار محترم اون نیت های خیلی که تو دلتونه آرزوهای خوب و منطقی و معقولتون به برکت حضورتون در این شب مبارک در این مجلس خدایی و ایمانی و اخلاقی و هرچه که حساب بکنید و سالم و ساله و پاک و تاهر آرزوها و نیتهای خیرتان را بهتون عطا بفرمایند بهترین چیزی که از خدا می امشب بگم چه چیزیه بهترین چیزی که از خدا می امشب خود خداست از خدا خودش به تلبید نگه من پول بده من ماشین بده من زن بده من فلان بده من مغازه بده به خدا بگو به خودت به من بده این بهترین داست وقتی خدا میاد با کمال کمالش میاد با هر نمود و نهتا اسمش میاد مالتو میشه از خدا خدا رو به طلب اگر خودشو به داد دنیا و آخرت به داده ماده و معنا به داده علم و عمل به داده در خاتمه یک حدیث میگم اصلا سه تا حدیث میگم بدون شعر فقط میخونم که چه هایی هست که ما ازش غافلیم اولین حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم و آله میفرمایند الناس معاد کمعادن الذهب و الفضه انسان ها مردم مثل معدن ها هستند چون معدن های طلا و نقره می‌و این معدن‌ها رو کشف بکنیم هر کدوم از شما یک معدنه. وقتی یک معدن طلا کشف میشه، چقدر طلا ارزش؟ چقدر سکه ارزش؟ چقدر شمش ارزش استخراج میکنن هر کدوم از شما یک معدن هست. معدن طلا و نخه. عجب استعدادهایی تو شما هست. عجب شمش‌های ارزشمند و گرانبهایی داخل شما هست. تو این کله شما هست. روانشناسا متوجه شدن میگن هر انسان یک پروژه است ولی قرآن میگه انسان هایی هستن که هر ثانیه یک پروژه است انسان هایی هستن که هر ثانیه عمرشون یک پروژه تولید میکنن برای بشریت کشور ما کم نداره غرب ما تو مفقود کرد خود از اروپا گرفت تفاوت دانشمندان ایرانی و دانشمندان غربی این که دانشمندان ایرانی در سن سی سال تا سی و پنج سال و چه سال نوابق دنیا شدن و به کشفیات بزرگ دست پیدا کردن سن دانشمندان هستی ای ایران ایران عزیزمون باور بکنه بین سی تا چه ساله اینه هنوز چه سال دیگه وقت دارن که اینا هرچی در این کلده هست گنجانده شده بیرزم بیرون تانشمنده غرب همه هفتاد سالشونش شست و پنج سال، هفتاد سال، هفتاد و پنج سال اونم مردن دیگه چه باید باید علمشنگ را بندازن جوان سی ساله مبتکر میشه اونم تو اتم، تو مسائل هستهی پیامبر درباره ما گفته لوکان علم منوطم منوت به سره یال تناوله ها رجال من فارس، رجال من فارس، اگر علم و دانش در ستاره پروین بود مردانی از ایران زمین به اون دست فیدا میکردن در خود امریکا فقط بیش از شیش هزار متفکر ایرانی وجود داره در خود امریکا بس فقط امریکای تنها بیش از شیش هزار متفکر ایرانی در حساس پجوهی دارن کار میکنن مراکز حساس علمی تو دانشگاه ها تو ناس ها تو مراکز تحقیقاتی تو لابراتورها، جاهای حساس غرب فقط در امریکا این آمار من نمیدم این آمار نماینده ایرانیان مقیم امریکا در کنگری پیجوهش مبتنی بر جامعه سراسری در اردبیل چه که از آمریکا دعوتش کرده بودن اونجا آمار داد گفت بهترین مهاجرینی که به غرب هجرت کردن لأوروپا ایرانی ها هستن باقی همه آباش و عرازل هم. ایرانی ها همه نظر اقتصادی قویان در اونجا و همه نظر علمی فقط در آمریکا بیش از سی شزار متفکر ایرانی بفولید به خودتون انص معادن كما عدن الذهب حدیث دوم پیامبر فرمودن تو با درختی در بهشت برای کسی که کلید خیر باشه و قفل شر باشه کلید خیر باشید در خیر باز میکنی به روی مردم و قفل شر باشید اگه در شر جایی میخوان باز کنن قفل بزنید تو قفلش باش نذار باز بشه و درخ خیر رو اگر کف زدن با پدک برو قفلو بشکن و حدیث سوم سوال کردن از رسول خدا صلی علیه و سلم، بهترین مردم چه کسانی هستن و بهترین عمل چه عملی پیامبر صلی اللہ علیہ فرمود بهترین مردم احب و ناس الالله انفعهم ناس. محبوب محبوبترین مردم نزد خدا مفیدترین مردم به خلق خدا هستن هر کسی که نفش و خیرش و فایدهش بیشتر از همه به خلق خدا میرسد اون مفیدترینه اون بهترین نزد خداست پیامبر معرفی میکنه نه گفت کسی که نماز خوب فقط میخونه برای شخص خودش گفت انفعهم للناس بهترین خلق خدا پیامبر معرفی کرد گفت مفیدترین برای خلق خدا کسی که قدم خیر برای خلق خدا برمیداره داره گفت بهترین عمل چه عملی است واسه پیامبر ارشاد فرمود سرور ان تدخلها حالا مسلم یه خوشحالی که بر قلب مسلمانی وارد بکنی یه دلی رو خوشحال بکنی اشکی رو پاک بکنی لبخندی رو جاری بکنی صورت غم دیده رو دوباره بشاش بکنی ناامید شده رو نوازش بکنی یتیم و نوازش بکنی که احساس بی پدری و بی کسی نکنه سرور ان تدخلها حالا مسلم خوشحالیی که بر دل مسلمانی وارد می کنید جزاکم الله خیر از این که کردید از همین شما تشکر می کنم من دای میکنم می کنم که انشاءالله خداوند به این انجمن مبارک انجمن محسنین جزیره قشم توفیق بده که الله از جوانو حمایت بکنه اونایی که میخوان دانشگاه برن هزینه شون بده ندارن از دانش آموزای ضعیف از دانش آموزای یتیم از که میخوان ازدواج بکنم قبلنم من گفتم در طول سال چهار بار انجمن ها اعلام بکنن بس نیست که حتما فقیر بیاد شرکت بکنه انجمن اعلام بکنه در طول سال هر سه ماه یک عروسی جمعی هر سه ماه بیستا سیتا تا از کل جزیره اصلا تو استادیوم از منطقه آزاد بگیرید اونجا برگزار بشه تاریخ بدن در تاریخ فلان سماه فلان تاریخ عروسی جمعی میخواد برگزار بشه فقیر و تالیار با هم هر کی دوستا رو بیاد سخت نام بکنه یک دفعه ببینید 50 تا داماد جمع میشه هم شروت و شیرینی. یه خرج یه سخنرانی گروه های سرود باید هم دست هم میفشاریم و به هم دیگه تبریک میگیم و همدیگه رو با آغوش میکشیم و باره هم همدیگه دعا میکنیم و میریم دنبال کارمون همینجور حرارت داریم انرژی داریم ایمان داریم تا سه ماه بعدی. دوباره سه ماه بعدی دوباره اعلام اطلاعیه دوباره ست تا داماد دیگه بیان ثبت نام میکنن وقتی دیدی که در سال دیوی سی تا عروسی شده سالم یک جا خیر و برکت زیاد و تو همون جلسه برای هر کدومی تفسیر نور یک کتاب عرضش من هدیه بدید. ما همه عادت کردیم که هدایه همون اگر تا لیوان باشه یه سرویز زد باشه مگر نمیشه که به عروس دامادا یک کتاب تفسیر هدیه بدید شاید همین کتاب تفسیری که شب زفافشون بهشون هدیه دادید اصلا باز کردن بسم الله گفتن تفسیر سوره هم خوندن در شب زفافشون این کار رو بکنید به عروس داماد تفسیر هدیه بدید کتاب ارزشمند اخلاقی خوب هدیه بدید شاید همون کتاب همون شب تحولی در زندگیش ایجاد کرد بزاکم الله خیر موافقه مایید از همه و همه که قبلا در زلزله خشمرایی کار در همکاری کردن تشکر میکنم از همه و همه که سبب این مراسم شدن تشکر میکنم همطور که نشستی از برادر مولا ستا سماکم خواهش میکنم با این دوستان آماده بشن اینجا بیستن برای حسن الخاتمه برای این ستاد داماد عزیز آه. اون یه شعر پایانی دارن وقتی که ستاد داماد همرا با دعاست و یه سری چیزها انشالله بخونن و دیگه هر کس دست دامادش بگیره و توکل به خدا ما میریم دنبال کارمون. ازاكم الله خیر موفق و معید سربلند